داستانهای شاهنامه به نسل ساده تنظیم برای اجرا فرید حامد تهیه شده در گروه کتاب گویا و کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده فرید حامه درود بر دوستان جان یاران همراه علاقمندان به ادبیات کهن پارسی فرید حامد هستم و با قسمتی دیگر از داستان شیرین زال از شاهنامه فردوسی در خدمتتون هستم داستان به اونجا رسید که زال بعد از اینکه به نزد پدرش برگشت در زابلستان که مقر حکومت سام نریمان بود زندگی می کرد و وقتی که سام برای یک مأموریت جنگی به منطقه گرگ ساران رفت زال تصمیم گرفت که گشتی در قلمرو حکومت پدرش بزنه و به سرحدات منطقه زابلستان سرکشی کنه و در این سفر به منطقه کابل رسید جایی که مهراب یکی از نوادگان زحاک در اونجا حکومت میکرد و در واقع زیر مجموعه ای از پادشاهی یا امپراتوری بزرگ ایران بود بعد از ملاقات با مهراب مهراب توصیف مفصلی در مورد شکل و شمایل ظاهر و رفتار و منش زال رو برای دختر و همسرش سیندخت انجام میده که این منجر میشه به اینکه دختر مهراب کابلی ندیده دل به عشق زال این پهلوان افسانه ایران میبنده و از اینجا به بعد رو امشب با هم پی میگیریم با ما همراه باشید یک روز آفتابی دلنشین که صدای پرنده از هر سمتی به گوش می رسید و دشت اطراف کابل مملو از گل و سبزو و گیاه بود زال پهلوان مثل هر روز به قصد شکار از خیمگاه و اردوگاهش بیرون آمد. سوار بر اسب سپیدش شد و کمان بزرگی رو به دوش انداخت و چند تن از همراهان جوانش رو با خودش برد بعد از اینکه به شکارگاه رسید با هر تیری که پرتاب می کرد از چله کمان پرندهی رو به زمین میانداخت. یکی از این پرنده ها بال زنان جایی دورتر از محلی که زال و همراهانش بودن به زمین افتاد زال و همراهاش با اسب به اون سمت رفتن تا شکار رو به چنگ بیارن از دور برج و باروهای شهر کابل به چشم میخورد و دشت پوشیده از گلهای رنگارنگ بود هنگامی که زال و همراهانش به اون منطقه رسیدند که فکر میکردن پرنده اونجا فرود اومده چند تا دختر جوان رو دیدند که شاد و سرها لخنده کنن در حال چیدن گل بودند دخترای جوان وقتی که اون سوارها رو دیدند سراسیمه شدند و رنگ از روشون پرید و همه دور یکی از اون دخترها که دستهای بزرگ گل سرخ چیده بود جمع شدند ترسون و لرزون بودند که این سوارها کیند و چه کار دارند توی این دشت و مبادا که با اونها آسیبی بزنم زال پهلوان پیشاپیش همه بود و با دیدن اونها شگفت زده شد، افسار اسب رو کشید و اسب روی دو پا بلند شد و شییه‌ای کشید. پهلوان از اسب به زیر اومد و به سمت اونها رفت، تعظیم می کرد و گفت: بانوان جوان، از اینکه شما رو پریشونا هر کردیم، پوز شما رو بپذیرید ما در جستجوی شکار بودیم که با شما روبرو شدیم و قصد نداریم به شما آزاری برسونیم بنابراین لازم نیست بترسید با این حرف زال دخترکان جوان کمی آسوده شدند و احساس امنیت و آرامش کردند و همگی به اون دختری که دسته گل سرخ داشت نگاهی انداختند تا ببینن اون چه پاسخی میده ولی اون دختر جوان که سخت شیفته ادب و فروتنی زال شده بود با آهنگی آروم و دلنشین گفت ای پهلوان جوان مرد از نیکندیشیتون سپاس گذاری امیدوارم که پهلوان گستاخی ما رو ببخشند اما های شما زال زر فرزند سامن نریمان نیستین که آوازش تو همه ی ایران پیچیده؟ با شنیدن این حرف چهره زال گل انداخت و اسب هم بیتابی میکرد تا اینکه بالاخره زال خودش رو جمع و جور کرد و جواب داد بله خود منم بانوی بزرگوار اما شما به من بگید که افتخار آشنایی با کیو دارم خیلی خوشحال میشم اگر بدونم شما کی هستید و نام و نشانتون چیه؟ با اون دختر با حالتی شرمگین با چهره ای گلنداخته و شرمسار گفت من رودابه دختر محراب فرمان روای و اینها هم ندیمه ها و همراه های من هستند شور و شگفتی زال دو برابر شد از هنوز بیتابی می کرد نسیمی گیسوانه سپید مایل به نقرهی زال پهلوان رو به جنبش در آورده بود چشماش برقی زد و گفت یعنی yani واقعا چنین خوشبختی بزرگی به من روی کرده چه روز ای یکی امروز چشم من به دیدار دختر محراب فرمانروای کابل روشن شده رودابه گفت برای من هم همینطوره و چه سعادت و نیکبختی بالاتر از اینکه پهلوان بی همتا و پراوازه سیستان رو دیدار کنم زال نان اسب رو محکم در دست فشرد و گفت اما افسوس که بیش از این نمیتونم در خدمتتون باشم و باید که اینجا رو ترک کنم و به اردوگاه خودم برگردم پس تا فرصتی دیگه بدرود رودابه هم با همون حالت شرم و حیای یک دختر نوجوان و شرمگین گفت بدرود پهلوان جوان مرد. ظال به عصب زد و اسب رو انگار که داره به پرواز در میاد از جا کند و به سمت اردوگاهش روانه شد. اما در دل پهلوان قصه ما آتشی برپار شده بود. بیتاب. بود. دیگه اصلا به فکر شکار نبود و شکار رو از یاد برده بود و فکر میکرد که این بار این شکار چیه که شکار شده شکار دختری که یک بغل گل سرخ داشت از اون به بعد خواب و خوراک و آروم و قرار از زال گرفته شد و از نزدیکانش و کسانی که با کابلو و خانواده مهراباش آشنایی داشتند در مورد رودابه میپرسید و اونها هم همه در مورد این دختر زیبا داد سخن می‌دادند که بسیار پاک دامن و خوب و مهربان و شایسته است و همه این حرف‌ها آتش عشق و دلدادگی پهلوان جوان ما رو بیشتر و تیزتر کرد شب و روز در اندیشه این بود که چه روز خوب و خورمی بود که با اون دختر آشنا شد بالاخره یه روز به همراهاش گفت که آفرین بر جهاندار پاک که امیدمون به اون و ترسمون هم از اونه خداوند خورشید و ماه که روان انسان رو به نیکی و داد راهنمایی میکنه که همه جونورا رو جفت جفت آفرید تا افزایش یابند و در چشم اون پیوند زن و مرد کاری است پسندیده و همه میدونند که پیوند زناشویی پیوند مقدسیه مخصوصا اگر با تولد و زایش فرزندی همراه باشه که نام پدر و نیاکانش رو زنده نگه داره من دیگه تاب و توان ندارم روز و شبم با فکر دختر مهراب کابولی کابلی می میگذره و آرزوی من ازدواج با اونه اما میدونم که به خاطر اصل و نسب ناپاک مهراب منو شاه و پدرم با این قضیه مخالفت خواهند کرد و اجازه چنین ازدواجی رو به من نمیدن حالا نظر شما چیه من چیکار میتونم بکنم همه ساکت موندن اونا میدونستند که بدون شک شاه خشمگین میشه و تردیدی نداشتند که از پیوند یک ایرانی پاک نژاد با دختری از نژاد زحاک به شدت مخالفت خواهند کرد. زال که سکوت همراهان و مشاورینش شنید به قول معروف دوزاریش افتاد دوباره به سخن اومد که میدونم که منو سرزنش میکنین، اما اگه تدبیری برای درد من پیدا کنید ازتون سپاسگزار میشم و یک روزی این کمک و این مشاوره و مشورت و راهنماییتون رو تلافی خواهم کرد نزدیکان زال بهش گفتن که ای پهلوان دلی و بی هم تا چاره اندیشی کار تو خیلی سخته اما تنها که ما میتونیم بکنیم اینه که یک نامه برای سام یل بنویسی و اونچه رو که در درت میگذره و خواست قلبیته با اون در میون بگذاری شاید که سام بتونه نظر مثبت و مساعد پادشاه منوچهرشاه شاه رو هم جلب کنه مگر خودش به تو نگفته که از این به بعد هر چه که تو بخوایی همون کار رو خواهم کرد این ایده و این پیشنهاد به نظر زال بسیار پسندیده اومد برای همین ای مفصل به پدرش نوشت و ماجرای عشق و دلدادگیش رو به رودابه گفت. و آخر نامه هم با اشاره به پیمانی که پدرش در بد و آشنایی و بازگشت زال با اون بسته بود خواست که پدرش به اون پیمان وفا کنه. همون پیمانی که سام گفته بود که هر خواسته ای که داشته باشی من برآورده میکنم وقتی نامه رو تموم کرد اون نامه رو به یک پیک داد و گفت که به سرعت برق و باد خودت رو به گرگ ساران برسون و این نامه رو فقط به دست سام یل بده پیک نامه رو گرفت و سوار بر اسب شد و اصل برق از اونجا دور شد به این امید که بتونه نامه را به دست سام یل برسونه و نظر مساعد و مثبت سام رو جلب کنه خب دوستان این بخش هم به پایان رسید داستان زال و رودابه یکی از زیباترین و آشغانه ترین و پاک ترین داستان های شاهنامه است داستان یک عشق پاک و خالص بین دو جوان که با پافشاری و اصرار و البته با تدبیر سندخت مادر رودابه بن سمر میرسه و چه سمرهی بزرگتر از اینکه حاصل این ازدواج رستم پهلوان تهمتن پهلوان نامی ایران و شاهنامه باشه پس تا فرصتی دیگر و ادامه این داستان و چگونگی ازدواج زال و رودابه همه شما رو به خدای مهربان می سپارم. روز روز روزگارتون بکام